دوستان وضعیت گفتگو در خونه شما چطوره؟ شاید فکر میکنید که گفتگو کردن با همسرتون دشواره، و حالا بچه هم اضافه شدن و این مشکلات گفتگو در خونواده رو بیشتر میکنه. ما امروز مثالهای عملی و شخصی خواهیم شنید که شما رو مطمئن میکنه. گفتگو بزرگترین اولویت در خونواده است. شکی نیست که اون میتونه چالش بزرگی باشه، اما منافع ارزشمندی هست که میتونید از گفتگو با فرزندانتون به دست بیارید و حالا معلممون اطلاعات بیشتری در مورد گفتگو در خانواده رو با شما در میون میذاره با هم گوش میکنیم در پایان جلسه گذشته در مورد برقراری ارتباط ما به گفتگوهای خانوادگی نگاه کردیم و بر روی انواع مختلف روابط و ارتباطات به عنوان خانواده تمرکز کردیم گفتیم که چطور با فرزندانمون به طور جداگانه گفتگو می کردیم یکی از انواعی که از اون صحبت کردیم گفتگوی جمعی خانوادگی بود که گفتیم این روزها دیگه رایج نیست بسیاری از مردم احساس میکن که این لوس با آوردن بچه هاست بسیاری از والدین هستند که حتی سعی نمی کنند به عنوان والدین با فرزندانشون صحبت کنند در فرهنگ ما خانواده های ما چند تکه شدن و هر کسی به راه خودش میره من اگر بخوام با بچه هام قرار بذارم روی تقویم اونا یادداشت داشت می کنم اما مردم از داشتن گفتگوها و ارتباطات خانوادگی دست کشیدن من خانواده هایی رو دیدم که برای خودشون دیسیپلین خاصی داشتند که خیلی نامتعارف بود اونها تصمیم گرفته بودند که تلویزیون نداشته باشند چون که می تلویزیون بزرگترین غارتگر این روابط خانوادگی هست ما وقتی بچه ها بزرگ می سر این مسئله خیلی کشمکش داشتیم و در دهه هفتاد فشار اونقدر بالا گرفت که من و همسرم یک بحران واقعی داشتیم و تصمیم گرفتیم که یک جلسه خانوادگی داشته باشیم. ما میخواستیم به عنوان یک خانواده با هم گفتگو کنیم. پس تصمیم گرفتیم که چون ساعت پنج و صبح هیچ کسی در برنامه کاری خودش چیزی نداره و بچه های ما مدرسهشون 25 مایل دورتر از خانه بود و صبح خیلی زود بیدار صبح ص همسر من صبح زود صبحانه را آماده کرد. من سیستم صوتی در سراسر خانه داشتم و حدود 5 و 20 دقیقه یا پ و سی دقیقه صدای موزیک رو بلند کردم تا بتونیم سر میز صبحانه قبل از اینکه اونها اتوبوس مدرسهشون را از دست بدن با هم صحبت کنیم. صحبت هر کسی تقریبا 3 دقیقه طول کشید. ما این رو به صورت صحبت‌های خیلی واضح و خیلی کوتاه عنوان کردیم. و من کاری روحانی کردم. این زمانی بود که ما صبحانهمون رو، در تاریک و روشن صبح تموم کردیم و بعد از اونها پرسیدم چطور میتونیم اون روز براشون دعا کنیم اینطور به نظر می رسید که اونها همیشه درخواست دعایی آماده داشتند مثلا میگفتن من امروز امتحان سخت جبر دارم بعضی از اونها به نظر می رسید مشکلات بزرگی پیش رو دارند و درخواست دعایشون رو دادن و بعد ما دعا کردیم قرار شد که هر کسی برای نفر سمت راستیش دعا کنه ما به این دلیل این کار رو کردیم چون اگر میگفتیم بیایید دعا کنیم اونها دوباره میرفتند که بخوابن اما اونها مجبور بودند که برای نفر سمت راستی دعا کنن اگر اونها می میگفتند که من امروز امتحان دارم برای اون دعا می کردیم خب وقت دیگر جمع شدن خانوادگی ما سر میز شام بود پنج و سی دقیقه هر عصر ما با هم شام می خوردیم از پنج و نیم تا شش و نیم شام ما طول میکشید و بعد از اون تا یک ساعت هیچ کس از جمله خود من میز رو ترک نمی کرد. من این رو یک بار مشخص کرده بودم که از پنجونیم تا ششونیم وقت شام هست. شاید شنیده باشید که رئیسی بود که سعی میکرد همه کارکنانش رو تشویق کنه که به عنوان داوطلب به صلیب سرخ بپیوندن. اما کسی توی اداره بود که او ملحق رئیس او رو صدا کرد و به او گفت: ما در این مورد صد 100% صد مشارکت خواهیم کرد. تو یا به ما ملحق میشی و یا اخراج میشی. او بلافاصله رفت و فرم رو امضا کرد. از او پرسیدند چی باعث شد که نظرت رو تغییر بدی؟ او جواب داد: آخه تا به امروز هیچ کس اهمیتش رو به این روشنی به من توضیح نداده بود. الان منظورش رو فهمیدم. شام در ساعت 5:30 تا شش و سی دقیقه بود و بعد از اون ما جلسه ای داشتیم به نام میزگیر. یکی از والدین معمولا سوالاتی میپرسید اما از هر شخصی سه سوال پرسیده می‌شد. سوالات اینها بودن. آیا روز خوبی داشتید یا روز بدی؟ این اولین سوال سوال دومین بود بهترین یا بدترین چیزی که امروز برات اتفاق افتاده چی بوده و سوال سومین بود آیا تو چیزی داری که به پرسی یا نشون بدی یا بگی؟ حالا میزه گرد قوانینی داشت یکیش این بود که اگر قرار بود چیزی نشون بدن باید قبل از اینکه شام شروع بشه اون رو زیر صندلیشون میذاشتن اونا نمیتونستند بقیه رو منتظر بذارن تا برن اونو بیارن. تا وقتی کسی به این سوالات جواب میداد کسی نباید حرف میزد نباید صحبت اونها قطع میشد. شد. کسی نمیتونست وقتی این سوالات از کسی پرسیده میشد خودشو با اون مقایسه کنه. بعد وقتی پدر یا مادر از همه بچه ها سوالات رو میپرسید، یکی از بچه ها از پدر یا مادر همون سوالات رو میکرد. به این ترتیب ما یک اتحاد دوباره بین خانواده پیدا کردیم. همونطور که قبلا اشاره کردم بعد از 7 سال برای اولین بار همه ما یک جا جمع بودیم. 5 نفر از هم سرانه اونها، و بچه های اونها و از اونجایی که در هفت سال گذشته همدیگر رو ندیده بودیم ما میز گرد رو در خانه دخترمون برگزار کردیم و اولین سؤال این بود آیا هفت سال گذشته ی تو خوب بوده یا بد؟ بهترین چیز در طی این هفت سال گذشته چی بوده و بدترین چیز در هفت سال گذشته چی بوده؟ چیزی هست که میخوای در مورد هفت سال گذشته بپرسی یا بگی یا نشون بدی؟ ما تا ساعت یک رو به یک اونجا بودیم شنبه شب بود ما چیزهای زیادی داشتیم که در میزه گرد راجبش صحبت کنیم شاید باور نکنید که ما به خاطر اون میزه گرد چه چیزهایی از بچه همون یاد گرفتیم یه روز بچه کوچه که ما که تازه مدرسه رو شروع کرده بود نقاشی رو نشون داد که توی مدرسه کشیده بود همسر من معلم مدرسه بود و به من یاد داده بود که از اون نپرسم این چیه شما باید به او بگید شما باید به او بگید خب راجع به این نقاشی با من حرف بزن من به او گفتم پسرم کمی در مورد نقاشیت به ما توضیح بده من واقعا میتونستم بفهمم که اون چی بود او به ما توضیح داد که اون تصویر خواهرش و خودش هست که کنار چشمه روی چمنهای کلیسا کلیساننشن و پدر رو تماشا میکنند معلم از اونها خواسته بود که بزرگترین چیزی رو که در زندگیشون اتفاق افتاده بود نقاشی کنن و این بزرگترین چیزی بود که برای پسرم توی زندگیش پیش اومده بود و این نشون میداد که چقدر وقت گذاشتن با من برای پسرم مهم بوده. چیزهایی که ما از بچه ها یاد گرفتیم باور نکردنی بود. من به شما پیشنهاد می کنم که روی جلسات خانوادگیتون کار کنید و خودتون و فرزندانتون رو عادت بدین که برای این کار وقت بذارید و به جلسات خانوادگی اولویت بدین. به عنوان یک خانواده با هم گفتگو کنید. من فکر می کنم اون کاری رو که ما به خوبی با اونها انجام دادیم، حالا اونها با فرزندانشون انجام میدن و ما به عنوان های بالغ با هم انجام میدیم. من فکر می کنم اگر وقت بگذارید و چنین جلساتی برگزار کنید چیزهای زیادی از فرزندانتون یاد می گیرید. در جلسه قبلی ما اولین حلقه رو دیدیم که گفتگو یا برقراری ارتباط بود. این جلسه می روی حلقه دوم تمرکز کنیم که سازش پذیری یا سازگاری هست. کلمه سازگاری از ریشه کلمه ای میاد به معنی با و رنج بردن. مطالعه کلمات کار جالبی هست. من استادی رو در دانشگاه استانفورد میشناختم که زبانشناسی شناسی درس میداد. من حتی نمیدونستم زبان شناسی چیه؟ و از او یاد گرفتم که زبانشناسی یعنی دوست داشتن کلمات هست و شما میتونستید در این رشته در دانشگاه استانفورد متخصص بشید. این رشته به معنی دوست داشتن کلمات هست مطالعه کلمات موضوعی جذاب هست. نویسنده امریکایی به نام اسکات پیک با کتابی معروف شد و کتاب او یکی از پرفروشترین کتاب های ده سال پیش شد. دکتر اسکات پیک روانشناسی هست که دوباره با این کتاب در عرصه ظاهر شد. نام کتاب جاده کم تردد بود. من فکر می کنم به خاطر کلمات ابتدایی کتاب بود که توانست عنوان پرفروشترین کتاب سال را به خودش اختصاص بده. سه کلمه اول کتاب عبارت بودند از زندگی سخت هست. سال 1980 وقتی من اون کتاب رو خوندم، به خوندن اون ادامه میدادم به خاطر اینکه زندگی من سخت بود. من از معضلات امدهی رو بور می کردم و نیازی نداشتم که یک روانشناس به من بگه زندگی سخت هست. زندگی من سخت بود. خب من اون کتاب رو می خوندم و فهمیدم که این کتاب می تونه برای کمک به خود کتاب ای باشه. اما اسکات پک در صفحه اول کتابش توضیح داده که در بسیاری از فرهنگ های دنیا، مردم میفهمند که زندگی سخت هست. گاهی ما فکر می کنیم زندگی بسیار آسونه و مشکلاتی وجود نداره. بعد میفهمیم که در هر زندگی لاجرم باران خواهد بارید. ما از این خیلی ناراحت میشیم چون در جایی که باران میاد میگیم این دیگه از کجا آمد، قرار نبود بارانی وجود داشته باشه. قرار نبود هیچ مشکلی داشته باشیم. ما فکر می کنیم مشکلات و رنجها مزاحم ما هستند. به نوعی اونها رو بلا به حساب میاریم که، توقع نداشتیم پیش بیاد اما اسکات پک اشاره میکنه در بعضی فرهنگ ها مردم میدانند که زندگی سخت هست اونها منتظر مشکلات هستند خب لغت شناسی کلمه سازگاری به زمانی برمیگرده که اونها باید احساس کرده باشند که زندگی آنگونه خواهد بود چون که دو نفر با در نظر گرفتن سازش با هم ازدواج میکنند چون تصمیم میگیرند با همدیگر صبور باشند و همدیگر را تحمل کنند اونها کسی رو میخوان که با او رنج بکشن شاید ندونید منظورم چیه به نظر میرسه که این نگرشی منفی به زندگی هست اما تا حالا به محبت گورستان یک کلیسای قدیمی رفتید و متوجه شدید که چند تا از اون سنگ قبرها متعلق به کودکان هست در بسیاری از جاها حتی امروزه هم داروی کافی وجود نداره و کودکان به خاطر بیماری میمیرد. مردم غالبا خانواده های بزرگی دارند قدیم هم همینطوری بوده شاید پنجاه سال پیش یکی از دلایلی که خانواده ها فرزندان زیادی داشتند این بود که اگر خانواده ای ده فرزند داشت شاید پنج نفر از اونها زنده می‌موندن. خانواده های بزرگ معمولاً رایج بودن و بیشتر اونها نصف فرزندانشون را از دست میدادند. خب چطور میشه این رو تحمل کرد ؟ از دست دادن چهار یا پنج بچه غم بسیار سنگینیه اما بسیاری از مردم این رو تحمل کردند. لازم نیست که خیلی دور برید به زمانی که مردم زندگی خیلی سخته، تحمل رنج به تنهایی خوب نیست پس بهتره که کسی باشه که با هم تحمل کنید به همین دلیلی که هفته گذشته گفتیم از تمامی اون گفتگوهای رابطه‌ای مهمترین گفتگوها گفتگوی بین زن و شوهر هست چون اگر شما فرزندی را از دست بدید میتونید اون رو با هم تحمل کنید و با هم تجربه کنید اما وقتی همسرتون را از دست بدید این رنج رو به تنهایی تحمل خواهید کرد من فکر می‌کنم بیوه شدن موقعیت سختری از از دست دادن فرزند هست فکر می کنم امروزه طلاق حتی بدتر از بیوه شدن هست چون که در مورد بیوه شدن بلافاصله فاصله حقیقت رو می پذیرن. و علاوه بر اون مسئله ترد شدگی وجود نداره ترد شدن سختتر هست تا از دست دادن همسر اما زندگی سخت هست و لغت شناسی کلمه سازگاری به معنی این هست که دو نفر تصمیم می گیرن سختی ها و مشکلات زندگی رو با هم تحمل کنند حالا برای هر کلمه ای به غیر از معنی عملی اون استفاده متداولی هم هست و استفاده متداول کلمه سازگاری به این معنی هست که دو نفر برازنده هم هستند دو نفری که با هم جور در میان اونها شخصیت مشابهی دارند ارزش های مشترکی دارندن اهداف و خواسته های مشابهی در زندگی دارند ما به این اشتراکات سازگاری میگیریم چیزی که مردم بعد از ازدواج میفهمند این هست که هر انسانی مزایا و معایبی داره. من امتیازات خودم رو دارم و کاستیهاي خودم را هم دارم. همسر من هم امتیازاتی داره و کاستیهاي خودش رو داره. و معمولا در شروع ازدواج کاستیها هنوز به چشم نمیان. اما بعد از گذشت مدتی از این واقعیت آگاه میشید که با یک سری مزایا و معایب مواجه هستید. شما اگر مسیحی باشید باید روی اونها کار بکنی بسیاری از مردم که مسیحی نیستن تصمیم میگیرند و با خودشون میگن من گمان نمی کنم ما با هم سازگار باشیم میخواییم امتیازات و معایب دیگری رو امتحان کنیم شنیدم که زوجی به دادگاه رفتن و دادخواست طلاق دادن قاضی گفت چند وقته که ازدواج کردید اونا گفتن 25 سال قاضی پرسید چندتا بچه دارید اونا گفتند 14 تا پرسید چرا می تلاق بگیرید گفتن با هم سازگاری نداریم خوب این چیزیه که این روزها بسیار متداول هست. چون فرهنگ دنیا میگه ناسازگاری مبنایی برای طلاق هست. دو راه برای نگاه کردن به این مسئله هست. یکیش رو میتونید نگاه مرد بگید. سالها پیش یک گروه رو در دانشکده حقوق در بحث ازدواج و طلاق رهبری میکردم. از من خواسته بودن که سرپرستی این جلسه رو به عهده بگیرم. در اون ایالت 13 دلیل مختلف قانونی برای طلاق وجود داشت. خب کتاب مقدس به شما سیزده دلیل ارائه نمیده کتاب مقدس فقط یک دلیل برای جدایی ارائه میده و اون هم عدم سازگاری نیست بلکه خیانت یکی از طرفین هست همونطور که گفتیم رابطه ازدواج رابطه انحصاری هست و خدا اجبارا از شما نمیخواد با کسی که این انحصار رو نادیده میگیره زندگی کنید این تنها مبنا برای طلاق در کتاب مقدس هست عدم سازش دلیل موجهی برای طلاق نیست اما امروزه مردم میگن ما با هم سازش نداریم پس طلاق میگیریم و با کس دیگه ای ازدواج میکنیم بعد از پایان یافتن دوره رابطه شیدایی و شیفتگی دوباره به همون دام گرفتار میشیم اما باید این رو بپذیریم که هر کسی مزایا و معایبی داره حالا وقتی به مفهوم سازگاری میرسیم، باید به کلمه پذیرش توجه کنیم چون که در یک ازدواج چیزهای زیادی هست که باید در مورد همسرتون بپذیدید. اینها قابل تغییر نیستن بسیاری از مردم ساده هستند. من فکر می کنم زنان بیشتر در این مورد مقصر هستند. اونقدر ساده هستند که فکر کنند بعد از اینکه ازدواج کردم او رو تبدیل به مردی خواهم کرد که دلخواه منه و اینجاست که کمک نیاز هست. همونطور که میدونید مرد وقتی که ازدواج کرد خصوصیاتی که مورد پسند زنش نبود پررنگتر خواهد شد و کسی خواهد شد که قبل از ازدواج بوده و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. میدونید که کتاب مقدس میگه مردم قادر نیستند کسی رو تغییر بدن. کتاب مقدس میگه آیا یک سیاهپوست میتواند رنگ پوست خود را عوض کند و یا یک پلنگ میتواند خالهایش را از بین ببرد؟ اگر آنها بتوانند، در آن صورت تو هم که چیزی جز شرارت نمیدانی، خواهی توانست کارهای نیک انجام دهی. کتاب مقدس میگه ما نمیتونیم تغییر کنیم. اون میگه ما میتونیم توسط خدا تغییر کنیم و این همون تولد تازه هست کتاب مقدس میگه در شرایط مشخصی قرار میگیرید و خدا میتونه شما رو تغییر بده بجز این مورد ما جور دیگری نمیتونیم عوض بشیم شما نباید با کسی ازدواج کنید که بخواهید بعدن او رو عوض کنید میدونید که این عملی نمیشه این ناپختگیه، این سادگیه وقتی به مسئله سازگاری میرسید باید بگید. من چیزهای معینی رو در مورد همسرم خواهم پذیرفت. اگر ضریب هوشی او 140 هست و ذریب هوشی شما 85 این تغییر نخواهد کرد و این بر سازگاری شما تأثیر خواهد گذاشت. حالا بذارید دیدگاهی در مورد سازگاری بهتون بدم. وقتی به سازگاری خودتون به عنوان زن و شوهر توجه می‌کنید، روی عرصه های منفی سازگاریتون تمرکز نکنید. روی عرصه های منفی سازگاریتون تمرکز نکنید. اگر بخواهید، میتونید این کارو بکنید. شما فقط روی نقص هم مرکز می کنید و به هیچ چیز دیگری جز نقاط منفی فکر نمی کنید. همیشه به نقاط منفی همسرتون نگاه می کنید و همیشه او رو با نقاط ضعفش به خاطر میارید. هرگز نقاط مثبت او رو به خاطر نمیارید. این نوع منفی گرایی میتونه ازدواج رو نابود کنه. اما نگاه مثبت میتونه به اره سازگاری کمک کننده باشه. یکی از دلایلی که من با همسرم ازدواج کردم، این بود که نصایح حکیمانه‌ای در مورد انتخاب همسر گرفته بودم وقتی من 19 ساله بودم مسیحی شدم و مردی که منو به مسیح هدایت کرد نصایح خوبی به من داد تا اون لحظه من مسیحی نشده بودم و در اون سن انگار ببری در درون شما هست و با اون مشکلاتی دارید من از او پرسیدم اگر تو بودی با این همه انرژی چیکار کردی و او این نصیحت حکیمانه را به من داد او گفت خدا همسری برای تو در نظر گرفته و این راه حل تمامی چیزهایی است که شما احساس می‌کنید من گفتم خوب از کجا باید بدونیم کی اون زن رو ملاقات خواهیم کرد او گفت بذار بهت بگم یه تکی کاغذ بردار و لیستی تهیه کن و تمام مشخصاتی رو که دوست داری یک زن داشته باشه روی اون بنویس اونا رو فقط روی کاغذ بنویس از نظر روحانی هوش زیبایی و بقیه مشخصات یکی از مشخصاتی که من نوشتم در مورد موزیک بود چیزهای زیادی بود که من در یک زن به دنبالش میگشتم بعد او گفت حالا درست در مقابل اون جدول لیستی تهیه کن و مشخصاتی رو که چنین زنی از مرد ایدهالش انتظار داره بنویس از نظر زیبایی روحانی هوش آگاهی از موسیقی و هر چیز دیگری اونها رو یادداشت کن و بعد به دقت به اون لیست نگاه کن و از خودت بپرس آیا من چنین مردی هستم؟ و اگر نبودی بعد شروع کن در حالی که منتظر زن ایدهالت هستی خودت رو با اون مشخصات تطبیق بده. من اون دو لیست رو حفظ کردم. لازم نبود که اون رو همراه داشته باشم و بهش نگاه کنم. اونها رو حفظ کردم و وقتی به این منطقه اومدم و با همسرم ملاقات کردم، میتونستم اون نقاط رو در او ملاحظه کنم. تا ملاقات بعدی صبر کردم چون نمیخواستم اون فکر کنه که من خیلی طالب هستم. اما ببینید وقتی شما این لیست رو تهیه کردید و هشت یا ده سال قبل از ازدواج این بکنید، وقتی همسر دل خواهتون رو دیدید او رو خواهید شناخت چونکه میدونید دنبال چی هستی؟ برای من مهم بود که زنم کسی باشه که از موسیقی سر در بیاره. او نوازنده ارککس بود و بیولوم می نواخت و سازهای دیگری هم می نواخت او حتی فلوت هم میزد. او خیلی به موسیقی وارد بود و هر چیزی رو که من به دنبالش بودم در او وجود داشت. حالا وقتی به سازگاری خودتون فکر می کنید یک بررسی سازگاری هم وجود داره. از خودتون بپرسید، چه مشخصاتی از همسرتون در وهله اول شما رو جذب کرد که سبب شد او رو به عنوان شریک آیندهتون انتخاب کنید آیا تا حالا به این فکر کردید؟ چند وقت که ازدواج کردی گاهی اونقدر ازدواجتون قدیمی شده که دیگه حتی اونو فراموش کردی؟ خب لیست خصوصیاتی که به دنبال اون بودید چی بود؟ آیا هنوز در زمیر ناخودآگاه شما مونده؟ چه خصوصیاتی بود که همسرتون داشت که شما رو جذب کرد تا با او ازدواج کنید؟ و بعد از خودتون این سوال رو بپرسید چند تا از اون خصوصیات هنوز باقی هستند من فکر میکنم این سؤال منصفانه ای هست. بعد از خودتون این سؤال رو بپرسید. شما چه خصوصیاتی داشتید که همسرتون رو جذب شما کرد؟ این هم سؤال منصفانه ایه. چرا او با شما ازدواج کرد؟ چه مقدار از اون خصوصیات رو هنوز دارید؟ و بعد به این به عنوان بررسی سازگاری جاری فکر کنید لیستی تهیه کنید از خصوصیاتی که زنتون امروزه داره که شما اونها رو تحسیم می کنید و به اونها احترام قائلید. و بعد لیستی از خصوصیات فعلی خودتون رو که دارید تهیه کنید که همسرتون در شما می بینه و اونها رو تحسیم میکنه و به اونها احترام میذاره. پیشنهاد دیگر اینه که لیستی از چیزهایی رو تهیه کنید که با زنتون در مورد اونها توافق دارید. به جای تمرکز بر عدم سازگاری بر سازگاری خودتون تمرکز کنید. دختر من یک گیره کاغذ به من داده بود اون مثل یک سنگ بزرگ بود که در بالای اون این سوال بود. اگر مانند سابق به خدا نزدیک نیستید و بعد وقتی سنگ رو برمیگردوندید در زیر اون این سوال نوشته شده بود. چه کسی دور شده؟ خب این سوال بسیار خوبی هست، اگر مثل سابق به خدا نزدیک نیستید، کی دور شده؟ خدا یا شما؟ حالا اینو در مورد زنتون هم سوال کنید. وقتی این بررسی سازگاری خودتون رو انجام دادید، و دیدید که مثل سابق به هم نزدیک نیستید، ببینید کی دور شده؟ زنتون یا شما؟ شما دو نفر در وحله اول چرا جذب هم دیگه شدید. آیا تماما اون رو فراموش کردید؟ من فکر می کنم خوبه که بر این تمرکز کنید. ما بیشتر در مورد عدم سازگاری فیزیکی میشنویم و رو راست میگم که شوخی نمی کنم. این مشکل جدی هست. اگر در روابط زناشویی روابط جنسی عادی هست، اون موقع این ده درصد روابط رو تشکیل میده اما اگر در روابط جنسی مشکل داشته باشید این میتونه 90 درصد مشکلات رو دربر بگیره خیلی از ازدواج ها به خاطر عدم سازگاری فیزیکی از هم پاشیده میشن حالا میخوام دو سوال در این مورد بپرسم ما بیشتر در حلقه بعدی به این خواهیم پرداخت اما الان بذارید این سوال رو بپرسم اگر شما ناسازگاری جسمی دارید از خودتون این سوال رو بپرسید اگر شما بر همسرتون متمرکز باشید و به خودتون متمرکز نباشید چه مقدار از ناسازگاری جسمی شما حل میشه؟ در این مورد فکر کنید اگر شما واقعا طرف مقابل رو مرکز توجه خودتون قرار بدید چه مقدار از ناسازگاری جسمی شما میتونه حل بشه؟ واقعا بزرگترین قسمت عدم سازگاری مسائل جنسی و جسمانی نیست اگر رابطه ی زناشویان که باید باشه هست این فقط ده درصد روابط هست. اگر رابطه زناشوی آنطور که باید باشه هست این فقط ده درصد روابط هست. خب صد درصد عدم سازگاری مسائل جنسی نیست. فقط ده درصد از اون مربوط به ناسازگاری جسمی هست. عرصه های دیگر عدم سازش چیه؟ من معتقدم عدم سازش به ارزشها مربوط هست. این یکی از بزرگترین عرصه های سازش یا عدم سازش هست. ارزش کیفیتی هست که ما برای هر چیز معینی در نظر می گیریم و به وسیله اون تعیین می کنیم که اون چیز برامون ارزش زیادی داره یا ارزش کمی داره و چقدر مفید و سودمند هست این یک سیستم ارزشی هست و همه ما برای خودمون یک سیستم ارزشی داریم شاید بهش فکر نکرده باشید اما همه ما برای خودمون این معیار رو داریم و وقتی دو نفر با هم ازدواج کردن این عرصه اولین جایی هست که عدم سازش میتونه دیده بشه. ارزش مربوط به این هست که مثلا ما وقتمون رو چطور صرف خواهیم کرد. آیا تا حالا روی این مسئله اختلاف داشتید؟ من ده سال اول ازدواجمون روزی رو برای خودمون کنار نمیذاشتم و یکی از دلایلش این بود که اون روز میتونست بدترین روز هفته ی ما باشه چون که ما نمیتونستیم تصمیم بگیریم چیکار کار بکنیم؟ چطور میخواییم وقتمون رو صرف کنیم؟ آیا تا کنون سر این مسئله که چطور وقتتون رو خواهید گذروند اختلاف داشتید ؟ زندگی شما چیه؟ زندگی شما واقعا چیزهایی مثل زمان هست از وقتتون چطور استفاده خواهید کرد؟ خودتون رو وقت چه چیزی خواهید کرد؟ آیا تا کنون سر این مسئله اختلاف داشتید وقتمون رو چطور صرف خواهیم کرد؟ پولمون رو چطور صرف خواهیم کرد در فرهنگ ما پول و زمان تقریبا ارزش مشابهی دارند. به این دلیلی که ما باید به نحوه صرف زمان اهمیت بدیم و وقتی هم پولمون رو خرج می کنیم، در واقع زمانمون را خرج می کنیم و به عبارت صادتر زندگیمون رو صرف میکنیم آیا تا حالا سر مسائل مالی اختلاف داشتی چطور میخوایم پولمون رو خرج کنیم وقتی از مردم سوال میشه این یکی از بزرگترین سوال هایی که پرسیده میشه و مردم بیشترین اختلاف رو بر سر مسائل مالی شخصی دارن اما واقعا در ریشه اون این هست که ما زمانمون رو چطور صرف میکنیم پولمون و انرژیمون رو چطور صرف میکنیم و این یکی از سوالات سیستم ارزشی هست این سازگاری ارزشی یا عدم سازگاری ارزشی هست. ما برای بچه هامون چه چی چیزی می وقتی شما بچه دار میشید از یه نظر مثل این میمونه که دوباره زندگی میکنید. مثل این هست که میگید من برای بچه هم چی میخوام؟ ما برای بچههامون چی میخوایم ؟ معتقدیم که چطور باید بچههامون رو تربیت کنیم. برخی از بزرگترین مشاجرات ما بر سر این بود و این بیشتر مربوط به پیش زمینه زندگی قبلی ما میشه. من جوانی بدی رو پشت سر گذاشته بودم با دوستان بد و عادتهای بد وقتی 19 ساله بودم ایمان آوردم و همسرم کاملاً برخلاف من بود او بچه خوب و سربراهی بود او مسئول گروه جوانان کلیسا بود و تا جایی که میتونست دختر درست و پاکی بود هرگز به ذهنش هم نمیرسید که کار خطایی انجام بده البته من فکر می‌کنم که این نظر من هست اما به خاطر تفاوت‌های گذشته ما ما رویکرد متفاوتی نسبت به تربیت بچه‌ها داشتیم وقتی بچه های ما نیاز به تنبیه داشتن چطور باید از پس این بر می اومدیم؟ شاید هرگز نتونید فکرشو بکنید اما ببینید این هم یک مسئله مربوط به سیستم ارزشی هست و ما اینجا در مورد سازگاری ارزشی صحبت می کنیم. حالا وقتی که ما ازدواج مسیحی کردیم چیزهایی هم به نام سازگاری بر سر نقش طرفین هست و این امروزه مسئله مهمی هست. این عرضه حساسی هست و شاید امشب خیلی از شما جلسه ما رو ترک کنید اما این مسئله بسیار مهم و حساسی هست. سازگاری بر سر نقش طرفین. شما نقش پدر و شوهر رو چطور ملاحظه می کنید. نقش زن و مادر رو چطور می این یکی از اره مهم سازگاری ارزشی هست. حالا شما حق دارید که این نقش ها را برای خودتون تعریف کنید و تا زمانی که اون متقابل هست واقعا میتونید شاد باشید. شما میتونید این نقش ها رو هر طور که میخواهید تعریف کنید و امروزه اونها به هر روش ممکن تعریف میشن. مردانی هستند که عملا ترجیح میدن در خانه بمونن و خانه داری کنن و اجازه میدن زن بره بیرون و ناناور خانه باشه. خب تعریف نقش مرد چی هست؟ تعریف نقش زن چی هست؟ اینجا کشور آزادی هست. شما میتونید این نقش ها رو هر جور که خواستید تعریف کنید. فقط مهم اینه که این تعریف برای هر دو طرف پذیرفته شده باشه اما حالا اگر می‌خواهید یک ازدواج مسیحی داشته باشید من فکر می‌کنم که به عنوان یک زوج باید این تعریف طبق کتاب مقدس باشه چون همونطور که در چند جلسه قبلی اشاره کردیم ما می‌خواستیم قبل از اینکه به مسائلی ماننده این برسیم این دیدگاه را مطرح کنیم یادتون باشه که این مسئله ازدواج و خانواده نظر خدا بود این خدا بود که ازدواج و خانواده رو بنا کرد پس باید انتظار داشته باشیم که نقشه‌ای برای ازدواج و خانواده در کتاب مقدس پیدا کنیم و از اونجایی که در واقع این نقشه در کتاب مقدس هست شما تعریف نقشها رو در کتاب مقدس خواهید دید. تعریف نقش مرد و تعریف نقش زن. من فکر می کنم اگر ازدواج شما ازدواج مسیحی هست و ایمان دارید که کتاب مقدس کتابی الهام شده از طرف خدا هست، بنابراین باید برای دیدن نقشه ازدواج و تعریف نقش زن و مرد به کتاب مقدس نگاه کنید اگر هر دو شما ایماندار هستید و معتقدید که کتاب مقدس نقشه‌ای برای این داره شما قابلیت بزرگی برای سازگاری دارید به این دلیلی که اگر شما اون عقد روحانی رو مد نظر قرار بدید قابلیت بزرگی برای سازگاری خواهید داشت چون که هر دو به یک سری ارزش‌های مشابه باور دارید کتاب مقدس چی میگه کلام خدا چی میگه اون باید مساله رو حل کنه حالا هنوز این سوال باقی میمونه که شما چطور اون نقش ها رو تعبیر میکنید شما متنی در کتاب مقدس دارید که نقش زن و مرد رو تعریف میکنه اما شاید بر سر تفسیر اونها توافق نداشته باشید و اینجایی که من میخوام شما را به چالش بکشم این درسته که ما میتونیم کتاب مقدس رو به طور متفاوت تفسیر کنیم اما من مخصوصا در مورد این مسئله متوجه شدم این اتفاقیه که پیش میاد مردم میگن میشه اون رو تفسیر کرد و اونها میگن وقتی شما برداشت خودتون را از تعریف نقش مطرح میکنید، من با تفسیر شما موافق نیستم اما اگر بپرسید تفسیر شما چیه اونها هیچ تفسیری ندارن فقط با تفسیر شما موافق نیستند اگر بپرسید خب شما اینو چطور تفسیر میکنید؟ کنید مثلا اف رو چطور تفسیر میکنید؟ کنید شاید بگن راستش من اصلا نمیدونم افسوسیان پنج چی هست من اهمیتی نمیدم چرا باید چیزی در مورد افسیوسیان 5 بگم مگه اون چی هست خب ببینید اگر ما مسیحی هستیم و باور داریم که کتاب مقدس کلام خدا هست باید کاری در مورد افسیوسیان 5 بکنیم و اگر با تفسیر من موافق نیستید خب حق دارید با اون موافق نباشید اما من هم میخوام تفسیر شما رو بشنوم اگر این کلام خدا هست و چیزی رو که میگه منظورش چیز دیگری هست پس اون موقع معنیش چیه وقتی امروز به موضوع نقش زن و مرد میرسیم چیزی رو میشنوید که بهش اختلافات فرهنگی میگیم درست بعد از اینکه این مطرح میشه میبینید که یک تفاوت فرهنگی هم وجود داره زن تحصیل کرده نیست بنابراین مأموریتی که به او داده میشه بر اساس موقعیت تحصیلی او هست و عامل فرهنگی نوع تفسیر رو مشخص میکنه خب من موافقم بسیاری از این متن ها هستند که باید به طور فرهنگی تعبیر بشن مثلا اول قرنتیان 6 اونجا که پولس به اهالی قرنتوس میگه اگر زنی موهای خودش رو کوتاه کنه در واقع نشان دهنده این واقعیت است که او فاحشه است بنابراین زن مسیحی باید اجازه بده که موهاش بلند بشه حالا اگر در اون منطقه چنون برداشتی از موی زنان نبود کوتاه کردن مو اهمیتی نداشت درسته ببینید این یک تفسیر فرهنگی هست یقینا همینطوره بعضی از این متنها باید حتما در زمینه اون فرهنگ تفسیر بشن اما بعضی از این متن چیزی هستند که به اونها فرافرهنگی میگیم یعنی تحت تأثیر فرهنگ نیستند و خیلی بالاتر از فرهنگ هستند اونها هیچ ربطی به فرهنگ 2000 سال پیش افسوس یا فرهنگ روم نداشتند اونها مطالبی فرافرهنگی هستند و من امروز میخوام چند تا از این متن های فرافرهنگی رو با شما در میون بذارم قبل از هر چیز بذارید به اول برگردیم من معتقدم در ابتدا ما متنی فرافرهنگی داشتیم در پیدایش باب یک خدا انسان رو مرد و زن آفرید نر و ماده او گفت که مرد تنهاست و این خوب نیست پس معاونی برای او خلق کرد و زبان ابری در اونجا میگه مکملی برای او ساخت زن مرد رو تکمیل میکنه حالا این هیچ ربطی به فرهنگ نداره من فکر میکنم ما از این متن در پیدایش کلمه ی عملی یکی شدن رو به دست میاریم و همونطور که در جلسه اول گفتیم زوجها تمام زندگی زناشوییشون رو صرف این می کنند که کدام یکی از اونها برتر خواهند بود. دو نفر یکی خواهند بود. اما دو نفر کدام خواهند بود. در واقع وقتی به شروع آفرینش برمیگردید اساس این هست. مرد بدون زن ناقص بود. زن کامل کننده بود و یقینا وجود مردی برای تکمیل کردن خود او هم ناقص می بود وقتی به یگانگی فکر می کنید این طور بهش نگاه کنید مسئله این نیست که در این یگانگی کدام خواهند شد واقعیت اینه که این دو تن تبدیل به یک تن میشن به همین دلیلی که در پیدایش 5 میگه آنها را آدم نامید نگفته که اونها رو آدم ها نامید فقط آدم. دو تن با همدیگر آدم بودند بدون همسرتون شما تکی از آنچه که باید باشید هستید شما ناقص هستید و بدون شوهر برای تکمیل کردن شما شما مانند لاشه ای بدون سر هستید شما تکمیل کننده هستید و چیزی برای تکمیل کردن ندارید از اون نظر که خدا شما رو به اون منظور خلق کرده تا با شوهرتون یکتن بشید شما شخص کاملی نیستید از اون نظر که خدا شما رو به اون منظور خلق کرده تا با شوهرتون یک تن بشید پس شما هم شخص کاملی نیستی اما ببینید او دو نفر رو یکجا جمع میکنه اونها رو یک تن میکنه و اون رو آدم میخونه بدین معنی که آن دو با هم یک شخص کاملی رو میسازن و این دو با هم دیگر میتونن کارهای زیادی انجام بدن این هدف خدا از ازدواج بود حالا این تعریف نقش بود من فکر میکنم حالا کار برعکس شده رو راست بگم الان دور زمانی شده که مرد زن رو تکمیل میکنه من فکر میکنم در بسیاری از ازدواج امروزی این مرد هستند که زنها رو تکمیل میکنند بدون تعارف بگم به نظر من این مخالفت با اصول خدا هست این یک اصل و هیچ ربطی به فرهنگ نداره بلا فاصله بعد از آفرینش از همون ابتدا نقش زن و مرد تعریف شده حالا بذارید به متن دیگری از کتاب مقدس نگاه کنیم اول پتروس باب سه یکی از مورد علاقه من در کتاب مقدس که به موضوع نقش زن و مرد در رابطه ازدواج می پردازه. در اول پتروس باب دو، پتروس داره مکنونات قلبی خودش رو با مردم در درمیون میذاره. او هرگز چیزی در مورد اول پتروس یا دوم پتروس نشنیده بود. او فقط چیزی رو که از قلبش برمیومد با مردم درمیون میذاش و یک نفر اونها رو یاد داشت میکرد. او در انتهای باب دو به این واقعیت اشاره میکنه که همه ما مانند گوسفندان سرگردان بودیم. او داشت با مسیحیان صحبت میکرد و میگفت. اما حالا به چوپان و نگهبان روحاتون برگشتید و شروع میکنه به نصیحت کردن به زنانی که شوهر داشتن و از کلام خدا اطاعت نمیکردند. این زن مشکلی داشت. او از کلام خدا اطاعت نمیکرد. این میتونست نشون دهنده این باشه که او ایماندار نیست. همیشه بسیاری از زنان ایماندار هم بودند که از کلام خدا اطاعت نمیکردند. این مشکلی بود که زنان داشتند. از این رساله اینطور بر که اونها از پتروس در اینباره نظر خواستند. پس او شروع میکنه به نصیحت کردن زنانی که شوهران اونها هم از کلام خدا اطاعت نمیکردند. او میگه همچنین ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد چون که سیرت تاهر و خدا ترس شما را ببینند. وقتی که تا آیه هفتم این متن پیش میره، او خطاب به شوهران این زنان صحبت میکنه و دوباره همون حرفا رو میزنه. او میگه و همچنین شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود حالا کلمه کلیدی که در اینجا هست کلمه همچنین هست همچنین به معنی مانند هست اما به مانند چی؟ خب مانند همون چیزی که الان ازش صحبت کرد ایسای مسیح شبان هست و نگهبان جانهای شماست و حالا شما با مسیحی شدن به سوی او برگشتید همچنین شما ای زنان همچنین شما ای شوهران در نوشته های پتروس و پولس شما به کررات مثال ازدواج مسیح با کلیسا رو خواهید دید آیا میخواهید بدونید که ازدواج باید چگونه باشه هر دوی اونها هم پتروس و هم پولس اینو میگن به این مثال مسیح و کلیسا نگاه کنید به این الگو نگاه کنید ببینید مسیح چطور کلیسا رو شبانی میکنه ببینید او چطور به خاطر کلیسا مرد ببینید او چطور خودش رو وقف به کلیسا کرد ببینید او چطور کلیسا رو شبانی میکنه شما زنان همچنین توسط شوهرانتون شبانی بشید منظور پتروس دقیقا همینه مردم به کلمه مطیع شدن اعتقاد چندانی ندارد همه چی بستگی به متی بودن داره وقتی او به شوهران میرسه و میگه همچنین شوهران منظورش دقیقا اینه او به شوهران میگه شما اون مثال مسیح و کلیسا رو میبینید شما هم مانند مسیح باشید و بذارید همسرتون مانند کلیسا باشه شما برای زنتون همون طور باشید که مسیح برای کلیسا بود این چیزیه که به مردان میگه اما به زنان میگه اجازه بدید شوهرانتون براتون مثل مسیح برای کلیسا باشن بذارید اونها شبان شما باشن بذارید اونها مراقب شما باشن بذارید اونها به فکر رفاه شما باشن حالا میخوام چیزی در مورد این مثال بگم. اولا این چیزی فرا فرهنگی هست. هیچ ربطی به این نداره که زنان موی کوتاه دارن یا موی بلند. هیچ ربطی به رواج فاهشگی در کرنتوس نداشته، هیچ ربطی به فرهنگ نداره. این مسیح و کلیسا هست. رابطه ی مسیح با کلیسا امروزه هم همون رابطه ای هست که مسیح دو هزار سال پیش با کلیسا داشت. این یک مثال هست. این یک الگو هست و وقتی پتروس نقش زن و مرد رو در ازدواج تعریف میکنه او میگه شوهران شما مسیح هستید و ای زنان شما کلیسا هستید و حالا ای شوهران شما همونطور زنانتون رو شبانی کنید که مسیح کلیسا رو شبانی میکنه شما ای زنان بذارید اونها شما رو شبانی کنند این واقعا معنی مطیع بودن هست من میخوام راجع به این مثال بگم که شما این مثال رو در اول پتروس 3 میبینید اون رو در افسوسیان 5 میبینید در پتروس نظر پتروس رو میبینیم و در افسوسیان پنج این رو از نظر پولس میبینیم. هر دو یک چیز رو میگن. مسیح و کلیسا الگو هستند. مردان مسیح هستند و زنان کلیسا. هر دوی اونها هم پتروس و هم پولوس در واقع یک چیز رو میگن. به اعتقاد من بزرگترین مشکل در درک این مثال امروز این نیست که زنان نمیخوان کلیسا باشند و مطیع شبانی شوهرانشون باشن. البته موارد زیادی از اینم هست. اما من فکر نمی کنم این بزرگترین مشکل در ازدواج‌های مسیحی باشه. به نظر من بزرگترین مشکل در ازدواج مسیحی مردان هستند که نمی خوان برای همسرانشون مسیح باشه، نمی خوان کاهنان خانه خودشون باشن. اونا مسئولیت هدایت و شبانی همسر و خانواده‌شون رو نمی پذیرن. به نظر من امروزه بزرگترین مشکل در ازدواج‌های مسیحی همینه. اما اگر به کتاب مقدس بیایم و بپرسیم آیا کتاب مقدس تعریفی برای نقش زن و مرد داره یا نه آیا اون چیزی در مورد نقش شوهر و پدر یا نقش زن و مادر داده میتونید سر زندگیتون شرط ببندید که داده البته شاید شما اون رو دوست نداشته باشید اما به نظر من اون بسیار واضحه پس اجازه ندید همه اونها با های فرهنگی کنار گذاشته بشن چون امروزه مردم این کار رو میکنن استدلال مردم امروزه این هست که خوب فرهنگ اون موقع با امروز تفاوت زیادی داشت اگر شما تصمیم بگیرید به تعریفی که کتاب مقدس از نقش زنان و مردان میکنه باور نکنید خب اون موقع میتونم بگم ازدواج های ما با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد همینطور میتونید به هم 5 نگاه کنید که بهتون گفتم همون چیزها رو میگه به در همون زمان گفته شده حالا توجه کنید اگر این رو درست تفسیر کنید به اعتقاد من مردان زیر فشار بیشتری هستند چون که به آوردن ماموریت مردان سختتر است از انجام ماموریت زنان اما پولس در افسوسیان 5 شروع میکنه و میگه با ترس از خداوند از همدیگر اطاعت کنید فقط این نیست که بگه زنان مطیع شوهران خود باشید شوهران هم مطیع زنان خود میشوند ما دو مخلوق داریم که هر دو طبعا خودمهور هستند و برای اینکه این دو یکی بشن باید اطاعت مداوم از یکدیگر داشته باشند تا این چیز کار کنه فقط این طور نیست که زنان مطیع شوهران خود باشند ما هر دو مطیع همدیگر هستیم اگر این رو درک نکنیم در واقع محبت رو درک نکردیم اما بعد او میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیست سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است ببینید همون مثال رو دوباره همینجا ببینید در سراسر این متن وقتی کتاب انتهای می رسید نمیتونید بگید کجا او از مسیح و کلیسا صحبت میکنه و یا از زن و شوهر چون یکی از اینها مثالی برای دیگری هست مأموریتی که به مردان داده شده فیض ای رو نیاز داره حالا میدونم که محبت کردن به دشمنانمون هم نیاز به فیض خارق‌العاده داره که اگر کسی به یک گونه ما زد گونه دیگرمون رو هم برگردونیم تا به اون هم بزنه و به او بگیم خدا برکتت بده. درست مثل فرانسیس آسیسی که در خلال جنگ از یه ترک مراقبت می کرد و یه نفر به او گفت فرانسیس اگر این ترک حالش خوب بشه تو رو می کشه و فرانسیس گفت اما قبل از اینکه منو بکشه محبت مسیح رو خواهد شناخت او فکر می کرد که وظیفه من اینه که محبت مسیح رو به دشمنانم نشون بدم ما میدونیم که برای انجام این کار و محبت به دشمنان فیض خارق العاده خدا رو لازم داریم اما فکر نمیکنیم که محبت به شوهر و یا محبت به زن به فیض نیاز داشته باشه و این بزرگترین اشتباهه برای اینکه محبتی که عامل محرکه ازدواج مسیحیه محبتی خارق العاده است وظیفه‌ای هم که به زنان محول شده نیازمند فیض خدا هست حالا ای که به مردان داده شده این هست که زن و خانواده خودت رو طوری محبت کن که مسیح کلیسا رو محبت کرد اگر این را به زبان یونانی مطالعه کنید متوجه کلمه حتی مانند خواهید شد. اگر اون کلمات را از هم جدا کنید بدتر خواهد شد. چون او در واقع میگه درست مانند همان روشی که مسیح کلیسا رو محبت میکنه، شما همسر و خانوادهتون رو محبت کنید. حالا شما زنان اگر شوهری دارید که شما و فرزندانتون رو واقعا مانند محبت مسیح به کلیسا محبت میکنه، آیا واقعا خیلی سخته که اجازه بدید او شما را شبانی کنه؟ آیا واقعا خیلی سخته که اجازه بدید او سر خانه بشه و اجازه بدید او مسئولیت هدایت خانه رو به عهده بگیره؟ و به مردان گفته شده که خودشون رو همونطور که مسیح خودش رو وقف کلیسا میکنه کنه وقف زنان و فرزندانشون بکنن. آه این مسئولیت سنگینیه. این چالش بزرگیه. من بعد از یه روز کاری خسته کننده به خونه میومدم و در تمام طول روز مشاوره داده بودم. ساعتها و ساعتها با انواع مشکلات در زندگی های مردم مواجه بودم و به مردم مشاوره و تسلی می دادم ساعت ها و ساعت ها با انواع مشکلات در زندگی های مردم مواجه بودم و به مردم مشاوره و تسلی می دادم به بیمارستان ها می و خسته و درمانده به خانه برمیگشتم و بعد اونجا پنج بچه ی وروجک به طرف من دویدن و از من می خواستند که حالا رو به اونها بدم پشت اجاق گازنی ایستاده بود که بچه ها تمام رمقش رو کشیده بودن و مشغول آماده کردن شام بود. و حالا او میخواست از من دریافت کنه. او میخواست رمق از دست را رو از من جذب کنه. اما من هم رمقی نداشتم. لازمه این فیض العاده ای از خدا بود که بتونم مانند مسیح خودم رو به اونها بدم. حالا اگر مردی با کمک خدا این کار رو میکنه، آیا این خیلی سخته که اجازه بدیدین مرد شما رو شبانی کنه؟ شما را هدایت کنه و خانواده رو هدایت کنه؟ دلیلی که گفتم لازمه این فیض و کمک خدا هست چون که به اونها گفته شده حتی مانند مسیح عمل بکند. حالا این کار غیر ممکنه تصورش رو بکنید از من خواسته شده که درست مانند مسیح عمل کنم شاید مدت کوتاهی بتونم کاری رو که مسیح کرد انجام بدم مثل او محبت کنم مثل او خودم و وقف کنم اما درست مثل او بودن. این چطور امکان داره؟ اگر مسیح درون من زندگی میکنه، این فقط به طور خارق‌العاده میتونه انجام بشه. اون موقع من میتونم برای زن و فرزندانم مسیح باشم و این ماموریتی هست که به مردان داده شده. و اما ماموریتی که به زنان داده شده، من واقعا فکر میکنم که خیلی آسونه. مثل این هست که میگه، اما مطی باشید. به نظر من او داره میگه، اجازه بدید شوهرتون شما رو شبانی کنه، اجازه بدید او شما را هدایت کنه. میگه در این مورد ملایم باشید این واقعا چیزیه که او ازش صحبت میکنه. مسئله فقط آرایش کردن و خودنمایی کردن نیست بلکه مهم روح مخفی و قلب هست روحی ملایم در نظر خدا چیز ارزشمندی هست. معنیش اینه که وقتی اجازه میدید او شما رو شبانی کنه با او ملایم باشید. یه بار دختر کوچکم توی ماشین در صندلی جلو سر پای ایستاده بود و من از او خواستم که بشینه اما او همچنان سر ایستاده بود، و من به پای کوچه که او ضربه ملایه می زدم و او رو وادار کردم بشینه. او لباش و و چیزی نمونده بود که گریه کنه. از او پرسیدم چی شده؟ او گفت من ظاهرا نشستم اما توی دلم هنوز سر پا ایستادم من فکر میکنم خیلی از زنها وقتی به مسئله تعریف نقش می و می بینن که کتاب مقدس راجع به این چی می اونها ظاهرا می اما درونشون هنوز سر سرپای استادن پتروس گفته نه. بذارید این مسئله ای درونی باشه. در این مورد ملایم باشید. او گفته ساکت باشید. ببینید اینجا مسئله برخورد با یک مشکل هست. شوهر زن از کلام تاعت نمیکنه میکنه. پس زن باید چی کار کنه؟ خب به عبارتی مرد سر جای خودش نیستاده. پس زن چی کار باید بکنه؟ خب زن میتونه او رو به جای خودش حل بده. میتونه او رو کشون کشون به جای خودش بیاره. میتونه با نصیحت او رو به جاش بیاره میتونه با فوش دادن او رو به جای خودش برگردونه اما پتروس میگه نه حتی بدون یک کلمه ساکت باشید به عهده او بذارید او رو به حال خودش بذارید تنها چیزی که او رو به جای خودش برمیگردونه اینه که ببینه شما در جای خودتون ایستادید من در طی سالها این رو به صدها زن رو در رو شرح دادم و در خیلی از موارد دیدم که این کار نکرده و در بعضی از مواردم دیدم که باری به هر جهت کار کرده و در مواردی دیدم که بسیار حیجان انگیز کار کرده. اما من ایمان دارم که این کلام خدا هست. اگر کار بکنه یا کار نکنه به هر حال کلام خداست. این تعریف نقشی هست که به زنان داده شده. من موفقیتهای شایانی رو در این زمینه دیدم. آیا نباید انتظار داشته باشیم خدایی که خالق زن و مرد هست بهترین تعریف رو از نقش اونها ارائه بده؟ در خاتمه بذارید این سوال رو ازتون بپرسم. تعریفی که شما از نقش زن و مرد به اون معتقدید و اون رو در ازدواجتون به کار میگیرید تا چه اندازه از فرهنگ تأثیر گرفته؟ چیزهایی که فرهنگ به شما میگه؟ و تا چه اندازه تحت تأثیر چیزهایی هست که کتاب مقدس به شما میگه؟ اگر شما علامتهای خودتون رو از فرهنگ میگیرید من نظریه ای دارم که شاید خیلی خوب کار نکنه چون فکر نمی کنم به همون خوبی که خدا به ما میگه کار بکنه به خاطر این که معمولا ما نمیتونیم همه جنبه های اون رو به خوبی به کار بگیریم بعد این واقعیت رو در نظر بگیرید که تعریفی که خدا از نقش زن و مرد کرده همیشه بهتر از تعریفی بوده که شما از خودتون و یا از فرهنگ گرفتید و بهتر از تعریف شما کار کرده من امروز میخوام که شما را با این چالش تا جلسه آینده به خدا بسپارم. آیا تأثیراتتون رو از فرهنگ میگیرید یا از کلام مقدس خدا؟ وقتی شما پیمان زن و شوی میبستید چون این چیزهای گفتید. در بهترین و بدترین شرایط، در فقر و در ثروت، در بیماری و سلامت. آیا واقعیت اون اظهارات رو امروز در زندگی تجربه میکنید؟ شاید شما شکسته اون رابطه رو تجربه میکنید یا توسط مرگ و یا طلاق. پید امروز در این مورد دعا کنیم. پدر، ازدواج نقشی تو بود و فقط تو میتونی اونو به رابطه شاد تبدیل کنی. خداوندا، امروز دعا میکنیم. هر قلب قصه داری رو تسلی بدی. خوهین درد به خاطر از دست دادن یا به خاطر چالش های زندگی اون رابطه های ازدواج شکسته رو ترمیم کن تا اونا دستای همدیگر رو محکم بگیرن و هر روز بیشتر به تو اعتماد کنن. خداوندا ما اینو از تو می طلبیم چون میدونیم تو ما رو دوست داری. شکرت می کنیم در نام ایسای مسیح. آمین.